سلام علیه سید و رسولی الله و آله طیبین و طاهرین و معصومین و نوشد دائمت و علیه دائم اللهم رفیان و آجایی از بشهرین و مرحمن و یا رفیان و برحالی از شد که بعضی از امور رو با آنوان تنبیه ها ذکر کردن در تعریف ریبن که مرجع اون ها بله به تحقق ریبت بره. ما ما های لفظ تحصیل در تحقق تحقیق موضوع بزن در همین مثل آلفقانه هم جلدی یک صفحه ستی صفحه بیسته که شروع کردیم پنجام نقطه پنجام لابد من صدق غیبه من وجود احد نیخصد و به تفهیم شکل انها اظهار ما الله در باب غیبت مراد این نیست که انسان تلفظ بکنه مثلا رجوع تو خون نشسته میگه فلانی این کار کردیش کسا می توشه خونه اینجا اهلی بوچنه این معلوم نیست در غیبت یا به این بخواد کسی رو تصویر میکنه در نفس خودش مثلا این کار رو کرد این کار رو ما این احمال اما بیان نمیکنه. این هم غیبت نیست و هلای به مجرد حدیث نه نهولای زید و علاقصال علمیه و مدتاک نفسالیه و من هلا اول عدم و تحقق غلقی و به ذکر انسان به ایوب میعلم و هل ببینید دو جور بحث دیم که ای که ایوبی که علنی است اونم خیبت نیست عیبش علنی نیست که مخاطر من میدونه یعنی من بگم یا اگر میشه اثر نمیکنه مثلا این هم قیبت نیست مخاطر کی بدونه با علم مخاطب این هم قیبت نیست البته اینا روی مبنای عرفیه یعنی ما موضوع قیبت و عرفی راستم بحث یا عرفی بزونیم. این چه صورت از غیبت نیست توی گوشه خونه میشه کسی که بن امیرمون در سر در چاه میکردن به چاه مثلا میگفت حالا کسی هم سر شاهی و بعد قیبت اشخاص رو بکنه که پلان این کاری کرده بکنه. این هم قیبت حساب نمیشه. خود و مقابل هم این باشه شعر رو برای ندونن. باز همه روی بزنید. و اونجایی که به اصطلاح حدیث نفس فقط تو زهنش یک مطلبی رو مرور میکنه اما تلفظ نمیکنه. این همی سه مورد از قیبت خارجه. اینها صدق قیبت نمی دو موردش راسته مطلبی ایشان. یکی اینکه کسی نباشه یا حدیث نفس باشه مطلب ایشون درسته اما اینکه مخاطب علم داشته باشه حالا این شبهه داره این خالی از شبهه نیست لاغر انسان احتیاض هم بکنه خوب چون طبق اون تفسیر او زکر که اخاف و دو سنه ممکنه از هر مقدار ناراحت بشه درست طرف ندید می‌خواستن شما بگی نه گفته بشه از گفتنش ناراحت این احتمال داره این محتنیست در همین نقطهی که پیروزا از کلمات خود مردم مستادن اشاره بار ذکر کردیم ذکر رو به ما یک رفه ما یک رفه ذکر هم گفتم نارده یا به ما یک رفه یعنی یک رفه اون صفت و اون مطلب رو کار به ذکر نداره آی خویی زدودن به ذکر اما خب ارس کردیم اشاره که داریم تحصیحا نگفت. این دو احتمال داره یکی این که اصیل زک روی اکدار مثلا خوششین روی کسی روی که که اون سفردی به زک مثلا این روی اکره. که کسی بدونه پس برای این با اون اختلاف در تفسیر این یکی صورت گیر پیدا میکنه و طبق اینش همروزه اخیر روشن شد نقطهی که مرمون استاد در از موضوعات گیر پیدا میکنند، سرین نتیشون این تفسییر درسه بعد قبول نکرده از تضونعملبی یاقولنادا حال ت پراخاب به مافی یک اوور اوسم و یون مرور اوسم این مشکل استاد اینجاست و چرا ابون نکردن نقطشان روشن شد؟ چون درست سروار زیاد داره و این مطلب مشهور هم است و که اشکال ایشان است از سرند سعی نداره روشن مساله خوب بحث به استعبار موزی خارج اون اساس بحث خارج اینه این نکات رو یکی یکی روشن بشه پس ایشان در حقیقت بردن روی مخصوم و عرفی قیبت رو اما اینکه که شارع تصرفی کرده یک فرد رو بزر قرار داده ولو ممکن در نظر عرف نباشد قیبت مثلا ذکر رو که یک ما یک دو سنه ایشان می‌فرمان میشه این کار البته حالا اون ما یک یک راه سما رو یک راه و ذکر رو یا یک راه اون مذکور رو اون چیزی که گفته ایشون این مطلب میشه مشکل نداره لکن ثابت نیست ایشان این که ثابت نیست اون آیندگی که قبول کردن ایشان سر چیه مطلبشون سر چیه درسته این روایات سندش چند تا هست بعضیش شغل ممکنه قبول بکنیم سمیوات عبدالرحمنان سیابه که یا یحیی الازر یا عبدالرحمنان سیابه که خوندی. چون دو نسخه از این رواز به ما رسیده یکی نسخه نسخه حسن محموده ما قبول بکنیم که اگر بزنکی از کسی نقل کرد حدیث قابل اعتماده یا سرقت این به در در مشهور در حساب تلقیه به قبول کردن محصول دو تا رابی داره که هر دو از بزرگانه و سند تا اونها صحیحه پس یک ما میتوانیم بعضی از احادیث تصیح رو تصیح کنیم دو اگر هم برتر از موفقه به تصیح نشدیم مشهور خواقه ها ما شالله در کتب تفسیر و فقه و اخلاق و حدیث و اینا این مطالب رو اوبردن خواقه پس این مثلاق بارز این که عمل مشهور جابر زرف سند این هم راه دو بود دو. سه یه راهی که چرا رو نه ارز کردن ازده به مرمومان ما که درستشون درک نکردیم از آز دروجیدی نرم کنن میشونی یه مقدمی دارن که فقه شیعه هاشی هست و فقه سنب یا بر حدیث شیعه هاشی است چون هاشی هست هاشی دازده نیست که هر جا ذکر شد او جایی که مخالف با مختبه ذکر میشه یا ای که موافقه ذکر اینجوری. چون این روایات ایشون تصویر اگر روایاتی یعنی هم رسول ها مشغور باشون. زمان امام صادق، امام موسیم جفر هزار سال و معروف و مشهور به این ها و در روایات ما رد نشود، هره کسی اثبات هم نشده ردن نشده امام بکنیم بی خود این تفسیر دهد که خواب ما کنیم اینجا هم به اصطلاح معتقدم به مثل آی برو که قبول میشه مثلا همین را در ذکر و که این در سری مسلم آمده خب در افیاد اگه سه ها مشهورم بود از آن دورگی این دونه پس چند سال شد پس صلاح استاد چی شد در به حاضر که ناز اولمان به اختلاف با این اختلاف ها رو گفت کنید زرافت های خار رو گفت رو کنیم. پس یک این شد که ما میتونیم همون احادیسی رو کهی کنیم اشار کردن روی موانع شیعه تثیر میکنم. دو هر این شد که درست سر زعیفه اما شوهر جابه اون هم آقا قبول سه این که این حدیث پیش ما با قساندش محل اشاره پیش اهل سنت هم خیلی فراوانه و هم سریعه سری سر د شده هم سری بخالی هم هم احساس رو سری مصل. م روی منا اگر در روایت اهل بیت حالا یا تعیید شده یا نشده اگر در روایت اهل بیت این مطلب رد نشده خود ر میکنه. این خودش کافی س اون موجت باشیم. این چند شد سوم شد رای رو را ما میریید هم مجموعه قرآنه به هم بزنیم خود یکی یکی مجموعه شواهد و قرآن مثل شهبت حدیث در قضا و اهل سنت سبوت حدیث پیش اونها وجود این در کتابهای مثلا در پیش نسبت نستردازه شده برای محرم بعد مثلا ما مثلا وقتی این تحقیقت خالی شده میبینیم فرس اون ما مثلا امام و صادق در قرآنه اول قرآنه دوم بودن وقتی مثلا می‌بینیم که منباب سرد و هرمان سریعا ثابت نیست یعنی از سال سال تا دیدیست اینجا ثابت نیست تو کتاب حسن محبوب اومده تو کتاب وزنطی آمده این از 22 و یعنی دیگه از یک طبقه بر این در مساده در اول معامله. چون تو این کتاب های این محبوب هست در اول منصوب صورده از یعنی ما به جای که چشونه ببندیم اسمش تعبد بگذاریم میتونیم شواهد نگاه بکنیم حتی میشیم چون من هر کردم ما کارمون رو یک افق کلی کاره نه دانه دانه, دانه،, دانه، بیشتر دانه ای حساب میکنیم افق کلی کار شورا در حدیث این اهل سنت و به زمان رسول الله این خیلی کمک میکنه اون افق کلی رو تفسیر میکنه و ببینید ما در شیعه مشکل اون چیه؟ کجا مشکل پیدا شده؟ چون ممکنه یک حدیثی با مثال هم بگم از امام صادر نراشده لیکن بعضها که ما پیدا کردیم قرن ششم دیدیمش. الان احادیثی در کتاب مستطفیات سراغر آمده خب فرض بگذاریم که اون حدیث صحیحه فرض و از امام هم صادر این در قرن دوم ساله شد خب یا قرن سوم یا این قرن سوم و ساله قرن سرون که از کتاب‌های ما شده خبی مسلم و هر حال بعد میبینید یه اصلای از این حدیث نیست بودن. نه در کتاب‌های دیگه این حدیث منطقه شده نه این مساده دیگه نه از این مساد فرصوی کسانی که قرن شهارون بودن مثل کلیمی اواخر شارم مثل صدو قرنه پنجام مثل شیخ توصیب و این شارم پنجام مثل موفی اینا هم نیاوردن، خوب دقت قصف یه درده رفته تو قرنه ششم، همین چند باره هسته همین حدیثی که خمس در حدیه هست خب تو سنشم احمد ابن هلال خب خوبی خویی ایخ که هست توصیب تو هم این حدیث در کتاب مستشفات سرای. از نوادر مصنفین محومه محمد النعیم محوم نرکتره سندش هم قابل را بود. فسان دودن. برای مواقعی فسان میتو خمس احلی است خب این ببین اینجا الان مشهر اینه. این کتاب روایت در قرن دوم آمازه توی آثار ابن نبی عمر نهر شده میشه اوالا قرن سوم. دیگه هیچ مستردیه نه برده. ایر از ابن نبی عمر در هیچ مستردیه نهر. سازه ابن عمی اومدن در یک نسخه از کتاب نسخه احمد ابن هلا در بقیه نسخه نعمده چون نسخه احمد ابن هلا کم و زیاد داره با نسخه مشروع خب وردن هیچ شرس شرفانه نداده. خود شیخ توسی رحمت الله این حدیث رو اینه یعنی کتاب نوالر مسنفین و عواله بودشه برداد به خط خودش نمشه خود شیخ توسی هم نموارده خود هم خودش شهر توسیح هم نبود خودش شیعه بود این تا قرن ششم مرحوم ابن ادریس در یک بخش از کتاب که احوال سخن سر مورد و بوسریو خیلی هم آشنایی با کتب نداره و اصطلاح حدیثی وارد نیست ایشون گذاشته اونجا آورده ببینید پس ما وقتی میگیم شهرت جابره یا کاسره وقتی میگیم قرائن به جای اینکه به طور کلی ببینیم یعنی این رو تفکیف میکنیم یعنی این رو زمان بردی میکنیم یعنی وقتی میریم این حدیثی رو امام صادر پرموندن این نیمه اول و دو. دوبار عبدالرحمن سریابه گفته ایشون نمیشون این نهی که ایشون تذکره خب طبیعتاً حدیث میریم تا سال دیویست حضر محبوب حضر محبوب و مرحوم ابن بزن... مرحوم و پس بین سال سال نبر تا این حدیث رو عقوده بعد از این تا هم در کتاب مشهور دیگه ایمه کتاب کافی آمده صدوب آمده بعد از این هم اصلا به نعصه همان شوهر واسه پیرامی تو پتوه همیه ببینید ما وقتی دقیقایی سوشد نحوه برد اونو افق کلی کار رو دیدیم نقطه اشکار رو هم تشریف دادیم نقطه اشکار جهالت و ناآشنایی ما با عبدالرحمنان سیابه یا یه یه از رقه این نقطه هم تشریف دادیم دیدیم بیدیم وردشم بیدیم کتب حدیثم بیدیم کتب تطوع هم بیدیم بقیق بکنیم بحث اینه که انصافت با این مجموعه و با این ترتیبی که ما ارز کردیم یه موسوق اغلایی بر ما پیدا میشه نمیخواد دوندونه حساب بکنیم انصافت یعنی مثلا جلاله تقریب نزندی اون طرف هم کسی نیست که حالا مثلا ضعیف باشه ما نمیشنسیم گاهیر این ها مثلا به شراط تقییزه زندگی میکرد در دانه همون صادر شراط تقییزه کاری که میکرد کسی شناخته نشن من در بحثی که بود که راجبه محمد نحمران بود بعد من رویتی شراط خارجی پیدا کردم بود زوغ خودم به ذهنم آمده اشونو مثلا محمد نحمران نعری به ذهنم آمده که این شخص از خاندان زراره است سر بردار زراره است محمد ابن همراه نه اگر این برداشته چون اینا اساسا مال روم بودن تمی ترکیه فعیلی باشه اینا زراره ترکیه بسته اساسا مال روم بودن و خودشون رو تابعه بدنی شیبان کردن خب یه خاندان معروف شیعه درکوفه بود احتمال بیم ادی از این خاندان خودشون از شیبان خالش کردن و اشعار دیگه منصوب کردن من که بسه خودشه به کردن نه هی یعنی بده نندی نه خب به اهل ترکیه اهل روم به حساب روم به حساب خودش و خود بیزانس به حساب بیزانس به علاوه ولی خود بیزانس که نرمی که از اثرتی است علاوه این احتمال هست که بدی از اینها مشغولاً تعمد در کار بوده و لذاری که از راه‌های خیلی مهمه بر وقته که حالت اون راوی بعدیه اون خیلی مهمه خب یک کسی مثل بسنتی که لاغرل و لاول سلا انصره وسیع بزرگ واجرو دایر و لاول سلا سی قبول کنیم نه بلکه هم فول ادا در شد یکی چیزی مثل حسن مرو که از ارکان اربعه در زمانشه احد الارکان الاربعه چون یه اصطلاحی داشتن تا این شد تشابه به خط قلوب هم داشت شما نگفتن امیر رو معمین ارکان اربعه داشتن سلمان و عوزر و مقداد و به اسرائی اما اینا بعدها در هر زمانی ارکان اربعه حسن محبور را اهد الارکان الاربعه که زمانه به حساب میورد دقت میکنه اینها چی نشون میده؟ اینها نشون میده که این حدیث اصلی داشته درجه یه درجهی که این ضعیف ها توسن که آقای این ضعیف هوردش رو کنید نمیشه داشته به ذهن ما این چونه یکی ای از بحثه کلیدی در واقع قیبت هم اینه. و بعد اینقدر این محلب جا افتاد اصلا در کتب لغت معنی لغت معنی قیبت سرایت کنید دقیق بکنید یعنی از کتب فقه و حدیث هم رد شد عبارت سهار خوندیم انیت کنه خلف انسان مس انیت خود انسان مسئول به سو او به ما یقوم محول این به ما یقوم محول و سمع بوده پس فکر بکنم یعنی برای روشن شد نتیجه گیوه ها روشن شد و لذا آیه خویی در بحث قیبت به اصطلاح شرعیش مراجعه نمی کنن بله در همین عبارت یقوم محول و سمع اون که اخواق ما یک و چون اختلافش بقیه موارد گفتن به ما یک رهو ما یعنی مرا صفته یا یک عملیه و مراد این که یک یعنی این صفت در نظر عرف متروحه شخص یک صفت زشتی عرفی و لذا ارجاع دادن این تفسیر پیغمبر رو به همون تفسیر لوهوی باشه پس بحث این است یا تفسیر پیغمبر ذکر و پرخاف یک چیز تازهی داره یا اینم به همون لغت برمیگرده او جایش به لغت پس نکته های بحث تا اینجا انشالله تعالی در بحث موضوعی فکر میکنم انشالله اولا این نکتهی رو که من ارز کردم تا اینجا یک چون در خود این عنوان در قرآن آمده این باید داره مفهوم و عرفی و درست است دو در ادهی از روایات عهد سنت و به سنده صحیح و در روایات ما به سندهش به اصطلاح امروزی ها صحیح نیست پرسیر شد که اخواق ما را و لسه ما اینه که های این اطلاق داره برای سفات خوب رو بگیره اصلا فرم نماز میکنه میگه خوشم من خوشم میبین نگه کش سرم من نارواقعا ناراهد میشم کسی بفرمون یک رحول و سمعه یک رحول و از کردیم یک یعنی سره مثله این تعود رو ما قبول بکنیم چرا قبول نکنیم؟ عدل دل پیش پیششیه چرا قبول بکنیم؟ اون چاروشی کردن از دو بعد از این که قبول کردیم یک رحول و سمعه یعنی سو باشه مرادش یا ولو سو هم نباشه این دو آیا مراد ذرک باشه یا مراد صفت باشه؟ این سه و اصولا اطلاق داره که حتی شامل صفت حسن هم بشه البته ما خوندیم و از جزاقبی ها مثل نه عرابی گفتن قیبت شامل صفت حسن میشه فعلا داره ولکه این صابت نشون محن ابن عرابی صابت نشون منوی نظر او قیبت به این معنا باشه چون غیب به معنی پوشیده افتعال هم در جان کوششه کوشش انسان ولی یک صفات پوشیده ای رو پیدا بکنه عادتا اینطوری یک صفاتی که پوشیده میگذاره قرر به خاطر بدبوده بوده میشه یعنی عرف این میفهمه وقتی دیگه شما بگردید پوشیده او رو پیدا کنین اون پوشیده رو ذکر بکنین فهم عرفی اینه که اون پوشیده روی تعماد پوشیده شده طرف پوشنده طرف اون مطلب رو قایم کرده پنهان کرده عادتاً انسان امور زشت رو پنهان میکنه عادتش اینه خوش میکن. پس تا اینجا من فکر میکنم انشاءالله تعالی برای تصمیم گیری شما در مسئله رو چند مسئله ششم مورد ششم لا تتحقق الغیده لا بکن مقتاب فرد معلوم به تفسیر اند المخاطبین فلوکان مورد انده هم بین اشخاص سوا اون کانو محصولین هم غیر محصولین فدکره و فدکره و به نقاعث و المعایب المحصول لایکونه این غیبت نیست البته ایشون فرق بین محصول و غیر محصول نگذشون که در نظر مثال مثاله هم نگو مثال رئیت و یوم رجبه و بخیلا بعدم آخرش این فرق بین فرقه و فیدالک بین ان یکون کل واحد محصولین کاره لذالک از ذکر املا لما عرفت من انده کراهتم مقبوله شرک نیست اما چون نفسه این به خودش کافیه از کنم که یه بحث دیگه هم میره مثلا یه احالی پلان محل یا روستایی هست یا اشیرهی هست یه این اشیره پلان محل شراکل داره مثلا پیشنهاد می‌فرماذ اگر افراد بودن این پیwet صدر نمیکنه. خب باید کشف باشه برای شخصی کش معصطره الله باشه اینجا چیزی رو کش نکنه این گفت یه نفر معین نیست وقتی این فرموزن که بله یه فرضیه اینه که فرض این اون اهل قریه اگر بفهمند که گفته شده یه نفر از اهل قریه شاخ خورده همشون ناراحت میشن اگه ایشون همیشه هم اصلا بوزا ریبر نیست. وقتی این نکته آخر رو که اینجا ریبر نیست میگن چون ما حدیث پیغمبر رو قبول نکردیم. ذکر که اخاک ما یک راه ولوس ما قبول نکرد. پس این مطلب ایشون با استدلال ایشان؟ از هم که اول اینکه ایشون محسور و غیر محسور این فرق رو میکنه محصول محسور فهمیدن. چرا ایشون فرق گذاشت نگذاشتن. یعنی صافن میکنه. خود. سه نفر آدم میگه که از اینا مثلا شواب بودن این سه نفر شون عددشون کمه شوهر روی هر کدوم سی درصده اما اگه غیر محصول روشون اهل شهر مثلا شواب یکی از اهل شهر خب این فرق پیشهر یه ملیون نزدن نصفت یک بیگ ملیون خیلی از نصفت سی به صده این دوتا بارم دیگه خیلی فهم نمید چرا مرحوم استاد فرقی بین محصول و غیر مح از کردیم انشاءالله خواهد آمد در بحث اصول را میتوند در فرص توی بحث علم اجمالی اینا معیار در تنجیز علم اجمالی رو وجود و حکم یعنی شما به هر حال یک حکمی به شما توجه پیدا کرده یا این یکی یا بونید اشتناب از مثلا ملاقی دو، ملاقی دن به شما توجه پیدا یا توی این کسی یا کسی یعنی ها بیشتر آمدن در بابه علم اجمالی میعیاب و اون حکم گرفتن در اینجا که حکم نیست حکم نیست برمان. لذا این علم اجمالی رو منجز نمیدونن لیکن ما از این در بابه علم اجمالی غیر از این جهدی جد موضوع هم هست اینا چون تعبودی گرفتن و جد حکم گرفتن جهت موضوع رو بررسی نکردن و خلاصه جهت موضوع اینه که ما در عرف با قطع نظر از ترتب و بر اثر علم اجمالی یک حالتی نسبت به اطراف پیدا میکنیم نسبت به جامعه حالت ما قطعه نسبت به اطراف حالت ما قاطع نیست به شکلی که گفتو شیخ ناصح دوست اما انفرادش بر اهل شهر یک روی ملیونه ما کار به حکم ما میگیم اصلا در محیاب اغلایی جایی که احتمال انتباقی یک رو میلیون باشه حساب نمی کنند احتمالی یک رو میلیون اصلا این احتمال ایست که اغلایی نیستوشد اما احتمال یک روی سه یعنی سی بسه درست نو حساب نمی کنند ولی تأثیر اغلاییش تا چه مقداره و حقیقت این تأثیر چیه تفسیری که ما در اصول عملیه داریم که رو نرس کردیم یک نوع ابداع نفس تأثیرش اینه ارس کردیم در واقع اصول عملیه یک نوع تعامل ما با صبر ذهنی است. در واقع امارا تعامل ما با واقع اصلا خاره به بینه هست امارا و اصول عملیه به نظر ما اینا تو توارد زیر زنیشه با پرد و یا باشید شمایی که اصول عملی وارد بشیم در برس اصول اونجا توزیادشه ارساییم کن هستا بما برگیم وقتی بگیم یکی از این سه نفر غیبت کرده در حقیقت اونی که واقعا غیبتشی کنیم مثل شراب خود اونی که واقعا غیبتشی کنیم یک نفره. اما چون این عنوان انتباهش در هر کدوم سی و سه درصده این انتباه در مذاره ارخ خابه در عبوده م ولو قابل قبولی رو جنبه ی آتفی و احساسیه نه جنبه ادراکی نه جنبه واقعی این میگه تو به منم قیبت منم کردی آبوری منم بردی میگه اون یک نفر میگه خوب بود این هم هسته نفرین دائره محدوده خیلی محدوده پس نکته چند شد این کیشون شوفن سرانکان و محصولین هم غیر محصولی نه اینطور نیست محسوب و غیر محصول ترم چرا ایشون فرق نگذاشتن؟ چون ایشون رفتودن روی در باقی تنجیز علم اجمالی ای و حکم نه رو موضوع چون با حکم در اینجا اون حکمی و ولذا دنبال این بحث نگفتن اما ما معتقدیم که نه البته ایشون در تفسیر شبه محسوره و غیر محسوره هم یه بحث خاصی دارن که کجا شبه محصوره است؟ کجا شبهه محصول نیست که انشاءالا باید جزاگانه ارز بکنم جا اینجا نیست پس سناول این این مطلب روشن نیست که ایشون فهمیدن. این مطلب دیگه هم که اگه همه متاثر میشن یعنی این کشفست انصافا این هم صرف قیبت احتمال روشنست ولی ایشون چون که از ذکرات اخاق ما یک رحول و سمعه رو میار نگرفتن پس نقطه روشن شد تا اینجا هی hey, ایشان دنبال این مطمئن که اگر ما ذکر تحقاق قبول کردیم یک مورد جزء غیبت میشه اگر قبول نکردیم نمیشه درست هم حضیمت البته بعد ایشان بله بعد ایشان فرمان بله اگر ما زکرم بله اگر برای خارج باشه و همه رو شامل بشه اونجا غیبت هلی. مثلا بگی یک جوری بگی مثلا بگی این آقا اقا این حوزه مثلا این طلابی که در این حوزه هستن اینا مثلا فایده ندارن اینا فرس همهشون همه شون از فران منطقه آمدن از ایران آمدن اران آمدن لبنان آمدن این بگی اینا چون همه شون ایرانی هم لبنانی هم خب این مرضو به حساب میشه رفته برده روی ایک عنوان این دو سی از سابه قد عرفتن نهو لیست فیلم. مسئله مایی عطم از علیفی تعریف لخیبه و تفسیرها الا بعض روایات ظریفه اینه خوازه نتیجه گیری مورد شک در مورد شک آیا حکم به حرمت حکم این بحث است شباعت موضوعیه تحریمی است ده از اخباری ها اگر به اگر محکومیه خب قوی تر اگر موضوعیه صرف باشه زعیف سر قاعدی به وجوب احتیاطان وکن حق با لیشانه که اینجا مجرور براعته اگر شک کردیم کنون مورد قیبت هسته نه، چون تفسیر خاصی رو قبول نکردیم اینجا برمیگردیم به سر و عرفی و اصلا هم هدر راسته هر پیش راسته اما از کردیم روایت ثابت رو نذارم از سامن انم مقتضا مازکر ذکر مشروع که من نرکی به و که خاک ماید هده اما صدقیقی به من حضور مختب ظاهرش اینه ذکر که اخواب ما یکی لو لو سمه یعنی اونجا که ما حاضر هم پس اگر خودش حاضر باشه قیبسته برمی میکنه بله حاضر هوا از در را ان تشویح مختب میته المیته تشویح که از مختب به فضویتن ما هوا به شعوری به ماغی اون ظاهرن در تشبیه های اونواره که خود من هم هنوز خیلی بباین یرکو لحبکن لحمه اخیه میتن فکره که من خیلی با نظر جمعه های خیلی مفهوم آیه روشن روشن نیست من دیگه نخواستم خیلی طولانی صحبت بکنم در این کتاب قطعوی همونتی یک شعر بوده زیاد نه بوده. ایشون بیه اصلا این درمیان عرب بوده که قیبست و اکل لهم میدونستن به شعری هم نهارو که مثلا قیبست میکنن بوشتش رو خورده اما در این مقداری که خودش هم داره یعنی خودونم اشاره داره و غیرش شعر میگه اما این که مثلا این تصور باشه که گوش خوردن در حالی که اون میترست میترست ایوه بانیر با کل هدو کم لحب محقیه میتر از میتر میترم قرار شد هموز نفهمیدم یعنی به اصطلاح شعر اما دست اضافه بر اون بسیار نعمه مجازی و استعاره ای که در لغت عرب بود مثلا, مثلا گوشت کلانه خورده نفیوتش شر این بوده این شواهد هست اما گوشت برادرش میتر خورده این رو هموز فیدا نکرد و احتمال داره که شارع مقدس میکان رو برای تاکید بر اون استقراض انسان که حساب فلسطین ها تاکید بر اون جهاد در بالای مبارکه باشه علاوه بر این ای ما میگیم یک مشکل اورفیستی زیادی است ظواهر نشون میده ایو حک و عدالتون علی اخی بوده. بوده این اورفی بوده خوب دقت این یه نقطه لطیفه هیچ‌کس کسی نوشته باشه. درست. که بحث باز حاضر باشه خودش این که من من معتقد هستم. من شروع کردم تعبد رو تعقل رو بکن تا واضح هر روز برای من واجبه. اولاً مسئله روشن شد. اولاً لا یع ابحثون بعدن اصل این یک مفهوم عرفی داره. دو تشبیح یا استعاره یا تحبیر دیگر یا تجسوم عمل را حتیه سوچو بگذاری از قیبت شده به لحم اخیه میکن از قیبت شده که در گفتوی داره منم نمیدونستم منم یه تحبوزن از قول گفتوی شعر نمیدونه کرده. شده که در شعر عرب و در استعاق عرب بوده که قیبت و خوردن گوشت طرف مقابل میدونسته تبخشو کنیم من بحثم اینه که در قران یک کلمه اضافه شده میکن یعنی یک مقدارش حالا یا در استارهش یا تشبیه شده جسد و, و همه. یه مقدارش با عرف نواخت بوده پس میگه این در عرف بوده ایوج و احد یک یک له معنی شعرش شما اگه تفسیر قرطبی رو نگاه بونی خصوصی نکات دقیق دیگه هم داشت اینا هم داشت تحقیقش رو بخیر بحث جامعه رو بکن چیزی که ما در خدا من نمیدونستم یعنی واقعا این معلومات نداشتم که این استلاح در میان عرب بوده که قیبت کردن گوشت پرک خوردن این مقدار هست خوب دقیق بکنین قیبت کردن گوشتش رو خوردن بعد دیگه اصلا این بود نکته ای که در قرآن زیادی آمده نگم روشن یه نقطه زیادی بره میتند ناقص زیاد هر چقدر بوده ممکن است، نه زیاد ناقصه نه کتاب خوبیه تفسیر واقعا. شعر ورده، شعر شعر یهو در زبان عرب، احتیاص سر می‌کنه و اهل نه. خوبه واقعا معلومات خوبی است، اصطلاح این من که باز می‌کنم، من اینکه خودش میکن. این بیشتر از این که فکر بکنی شاید یک نکته تو یعنی ما بدونیم چی داریم، چی داشتیم، چی اضافه شده، چی کم شده. خود من تا که تو خودم فکر کردم. میذارم شما مثلا خیلی وقت چند ساعت مطلب فکر، ما به ذهن ما اصلا وقت خوابیدی رو هر چی فکر کردم، هر چیزی من کردن، از این نقطه تلاش می‌کنم هم این را دیدیم. که یک مطلبی که در عرف بوده. چون شایه مقدس این مسلم یک مطالبی در پیش قربوزه کم میکرده زیاد میکرده نکاتی رو اونی که ارمان به ذهنم میاد میادید برای تحکیده در بشاعت این کار و استغزار به این کار زشته برای تحکید باشه حالا آرز خود نه نکتهش مثلا میتنگ حاضر نیست اگر حاضر باشه بقولیشان از روی دبا میکنه بیگه مرده نیست آقا فرقه بینه مرده و زنده اینه هر جسمی تا مادام بتونه عوامل خارجی موانع و از خودش درد بکنه اون زنده هست نتونه درد بکنه مرده است. جامعه هم همینطوره هر جامع ای که درش مشکلی پیشونه نتونه درد بکنه مرده است. بتونه درد بکنه زنده هست اصلا سرد این که در آن کریم هم از ایمان و حیات تربیه شده همینه انسان در دنیای ایمان و اسطان شما هم میتونه یه ش انسان یا توی در ورده مرده است حیات زنده نداره اگر تونست درک بکنه حسین در سفر به بین زنده و مرده اینه این به طور کلی درست شد بسیار خوب اینم خب بیا خدا نکرده چیز هم خود من اگر واقعا این بوده این اصطلاح در ب که ریبت اكل لحم اخیه لكن عن شخص اینجا جابر اخیه نموسنان. چه از این میتن رو الان تا این لحظه حالا ممکن برد خود معنای دیگری بر ما روشن بکنه تا این لحظه تو زهن من این میاد که میتن یک نوع تأکیب باشه بر بشاعت این عمل به استغزار این عمل اگر خود این اصل اصطلاح باشه شاید از باب کسا که بشاعت و یا به خاطر اینکه که چون نیست حاضر نیست اینجور گفتن چون حاضر نیست ایشان نشطه فی این تشبیح المختاب بالمیته البته میته نه میته نیست این نماغوبه میته به استداره مرداره بیر از میته که مرده است ما بین مردار و مرده فرمیزه میته مرداره میت یا میت که اون هست اون مرده است. این نماغوبه لعلم شعوری فیل به ماقی فی. چون شعور نده. احتمال داره احتمال من که میدن بیشتر جمعه ترکید توالا و اما ما علازه کرنا فی تعریف الغیبه فلا فرغیتی انتباه و بین حضور مختلف و عدمی مادام یست و علاقول انهو اظهارون لما سطره الله درسته اظهارون لما سطره الله من شخص مستور و بعدا خودیشان عبارتیه لغوین کردن انیف کلب و خلف انسان مستور لذا و خود کلمه قیم هم با این معنی مساعد در مورد شهود لذا اینجا انساقه هر با من رو موساد نیست اگر خودش حاضر باشه گفته بشه ولو اون سفر مخفیه اون اجد غیبت، کار حرامی اجد ایزا معلوم نیست ایشان تفسیر و قبول نکرده. اما اگر ما تفسیر را هم قبول نکنیم به صدق و برگردیم ظاهرن در صدق و غایب بودن شخص ذخیره. پس این مطلب رو هم قابل قبول نیست و قابل تقیید نیست و سال الله و